الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام على سيدنا و نبینا محمد، <المحرم <المحرم> <الله> و, نبینا محمد>. و نبینا محمد> على آلِهِ تجبينا تاهرین المعصومین ما بقيت الله في الارزین.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 السلام على جمیع بیا الله و رسوله و اجمعین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحين، السلام على علی امیر المؤمنین، السلام علی صديقة الشهید، السلام علی الحسن و العسین، شباب اهل الجنة اجمعین.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 السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجت بن الحسن القائم. المحن. اللهم كن لوليك الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. فی هازه ساعه و فی ساعة ساعه ولی و حافظ و غائد و ناصر و دلیل و فيها حتی تسکنه ارزک و فیها اللهم عجل لولی کالفرج و اجعلنا من انصاره و قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من دیشب و امروز خیلی تو فکر بودم امشب کنیم از طرفی دوستانی که خب از این حسینیه و دوستانی که شاید غیر از این حسینیه کربلا مشرف بودن امشب توی این حسینیه تشریف دارن و حال و هوا حال و حوای کربلاست و نجف به خصوص که شب جمعه گذشته همین موقع ها ما نجف بودیم و و ورود به نجف هم به دوستان عرض کردم قددانی کنید که امیر اجازه داد اگر شبای جمعه از علی گفتید از آن مقرب شب جمعه هم وارد کوفه بشید و نجف خب امشب شد حالا هوا حال هوای دیگه ای باشه اون حرفا رو بزنیم از طرف دیگر احساس کردم این آیه هم در ارتباط با همی حرفاست بحث ما کاره مونده و فرصت هم زیق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 به هر نحوی در ارتباط با حسینیان چه باعث گردوندن حسینیان چه در حسینیه خدمت میکنن چه در جلسات شرکت میکنن چه در کلاسها ها هستن ما برای همه اونها زیارت میکنیم دعا میکنیم آرزوی توفیق براشون داریم حتی این عبارت رو صحن ابی عبدالله رفقا شاهدن بلند ابی عبدالله عرض کردم دوستان استاده بودند گفتم هر کسی که یک بارم در این حسینیه شرکت کرده اگر از دنیا رفته امیدوارم در این سحن ابی عبدالله روبروی زریع حضرت از حضرت میخوام انایت رو شامل حالش در اون عالم بکنه اونایی که حیات دارن ولو یک بار توی حسینیه اومدن رفتن امیدوارم مشمول انایت ابی عبدالله بشن و جعای دیگه اون مقداری که از دست ماها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 و فقطقا می میخواد دست جمع بریم خب این سفر خیلی که در اختیار ما نیست حتی از اینجا ما دو تا اتوبوس هم را بیفتیم از سر مرز به اون طرف گاهی عملا بین دو تا اتوبوس فاصله میندازند گی نمیگذارن دو تا اتوبوس با هم جمع باشن. یه اتوبوس یا و پنج نفر بله معمولا میتونن همه جا با هم باشن. خب ما همین دوتا اتوبوس هم و خیلی وقتا با هم بودیم ولی بعضی جاها ما را از هم جدا میکردن. من می دیم چیکار کنم. لذا این سری رو حالا بعد از مدت‌ها بر مبنای کسانی که خیلی توسعیننی فرض کنید بیشتر خدماتی داشتن یا اقداماتی کرده بودند، گفتند که در بین اینها قرره کشیمانن در واقع که این تعداد پنجاه تا انتخاب شد. وگرنه نه هیچ جهت خاصی نسبت به برخ دیگه نبود ولی امیدواریم از حالا به بعد اگر ابی عبدالله انایت کنن امیر المؤمنین سایشون رو بر سر ماها بگسترانن و بقیه محسومین لاعقل هر چند وقتی بار یک اتوبوس و نفر بیشتر فعلا تصور میکنم یه مقداری مشکل باشه بخوایم همیشه با هم باشیم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 اولین قدمتون آقا مشکل دارم اومدم نباشه اولین اقدامتون گرفتاری گرفتاریام حل نشده شدم بیام پیش شما گرفتاریمو حل کنید نباشه اینارم رو هم بخواید بعد ولی اولین قدم هر چه ارزش است در این عالم وجود به اذن الله کانال شما به ما رسیده ما مدیون شما در مقابل اون همه عنایت شما ما چه کار کردیم؟ حالا میخوایم بس سر و پای برهنه بیایم خدمتون اول بگیم متشکریم سپاس گذاریم شما بودید که دین رو برای ما زنده کردید شما بودید راه خدا رو به ما نشون دادید اگه در زیارت عبی عبدالله میخونید اشهد و انکه قد اغمت از سلات و از زکات و امر تبل بالمعروف و نهی عن المنکر این مزامینی است که امه یهودا به ما یاد دادن در زیارت این بزرگواران مطرح کنید یک شکل از تشکر و قدردانی همینه بیایم به پابوسیتون لذا بزرگانی بودند که از دروازه کربلا پا برهنه میشدند تا چه برسه حریم بین الرهلمین سر و پای برهنه می رفتن. چند روزی که تو کربلا بودند غذای پختنی نمی خوردن. میوه و شربت و شیرینی نمیخوردن خودشونو فقط در حدی که فعلا گرسنه نماشن که بتونن اعمالشون انجام بدن یه چیزکی می‌خوردن و صدجو جو تا بتونن انجام وظیفه کنن چون سرزمینی است که یک بزرگواران عالم وجود بزرگواران عالم وجود برای بزرگ بارآوردن کسانی که میخواهند بزرگ شوند همه چیزشونو دادم من تو اتوبوس به دوستا گفتم گفتم اصلا قابل مقایسه نیست این حرفی که من میخوام بزنم ولی چاره ای ندارم در قالب تمثیل میگم اگر یک کسالت هادی بنده داشته باشم تقریبا معیوس بشم از ادامه حیاتم یه پزشک حاضقی پیدا بشه منو مداوا کنه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 سرشونو بدن زن و بچه به اسارت هم بفرستن همه امکانات دنیاوی رو از دست بدم برای چی؟ برای که من شما آدم شیم من شما رشد کنیم با اون قیمت ایسار و فداکاری که از هرچی بخوام بگم زبان ناقصه نسبت علکنه نسبت به او شما تشکر نسبت به اینا اگه بخواید داشته باشید چیه؟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 یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله اگر چه زمان منو به عقب انداخت و در کربلا نبودم که شما رو یاری کنم ولی حالا به جای اش خون گریه میکنم حالا چنین میکنم حالا چنان به منو شما یاد دادن تو زیارت بگید یا لیتنی تو معکم ای کاش منم با شما بودم حالا نیستم امروزم امروز چه کار میتونم بکنم یک تشکر قدانی قد زیارت یک قدمش قدردانی و تشکره خوب لازمه قدردانی و تشکر این نکته مهمه که من خیلی بچم بی اطلاع و بدبخترین منم توی جمع اما اینو واقعا رنج می بردم. خدا میدون قصه میخوردم که خدایا شیعه ما معرفتی بیشتر پیدا کنه، رشد کنه، با یه شناخت بهتری وارد بشن با یک توجه بالاتری وارد بشن ببینید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 حسین جان متشکرم که این همه زحمات کشیدی اومدم بگم فداتون بشم شما بودید که حق رو شناسندین خوب شناسندن حق به چه قیمت بود همین امام حسینه که فریاد میزنه الناس و عبید و دنیا و دین و لقن علا السنته هم یهوتونه هم ما در هم و محسوب قلت دیانون اگر من اینجوری باشم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 شهید در راه خدا غیر امام غیر معصوم ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اون وقت شهیدی که امام هم باشد اون مقامات اونچنانی پایین پای از ت벌 فضل علیه السلام ایستاده بودم عرض ادب میکردم یکی از دوستان روحانی قم رسید حال خوشی هم داشت تو این سفر من گاهی توجه می میکردم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 زحمت کشیده بوده، خیلی مثلا دنیا دیده بوده و مورد توجه ائمن بوده و بو پیغمبرم منّا سلمانون منّا اهل هم فرموده و اینا. که شب خواب دید ازت حضرت زهرا اللح... پایین پای علیها پایین پای رو ابلفضل روبروی زری این آقا داره میگه شاهد باش ما می‌خوام ذکر فضیلت کنم اینجا بگم. که شب خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عالم توجهی نمیکنه. عالم از که بی, بی جون از من جسارتی سرزده من فدایی شما فرمود بله به پسرم عباس توهین کردید اگر پسرم عباسی نظر کند همه مردم سلمان میشن این غیر امام میشه تو شهدای کربلا بله ما عقیده من اینه اینا رو اسوات هم میکنیم هم داریم غیر امام شهید کربلا ابلفض علیه السلام به فرموده حضرت زهرات طبق نقل در عالم رویا که استدلال هم میشه کرد اگر بخواد نظر کنه همه رو سلمان میکنن وقت امام حسین که امیرالمومنین کیه انسانی که اومده به زیارت اینها معرفت اگر باشه دیگه سر از پا نمیشینصه که کجا راش دادن که هرس بزنه عکس منو کنار زری بگیرید ولو پشتم به ذریع شد حالم چه بشه عکس داشته باشم که کنار زری عکس گرفتم توجهم به فیلم بردار باشه که منو که کنا... چرا ما اینقدر ضعیفیم خودم میگم کجا رفتیم ما ارز کردم به رفقابز یا شاید تکراری باشه آقا امشب امشب توی حسینیه مثال میزنم کسی بیاد به من بگه که فردا ساعت ده صبح از امام زمان علیه السلام برای شما یک ساعت وقت گرفتم فرض این ممکن نیست نگید که حالا کسی از این در دوکان ها میخواد باز کنه اگر فرض بفرمایید از کانال امام عصد علیه السلام یه شخصی بیاد یقیناً صحیح فردا ده صبح برای شما از امام عصد براتون وقت گرفتم شما امشب تا ده صبح فردا چه حالی دارید؟ امام عصد؟ خدمت آقا برم؟ چی بپرسم؟ چی سوال کنم؟ چه کار کنم؟ اول دستشون رو بوسم؟ اول پاشونو ببوسم چه، شما چه حالی خواهید داشت آقا همه امامان کلهم نورون واحدن، هم امامم زنده و مرده نداره لحظه ورود به حرم یک امام یعنی وقتی که امام داده داری وارد میشی سر از خواه میشناسی اگه این معرفت تو افراد ایجاد کنیم اون وقت سعی میکنه برای اینکه دستش به ذریعی برسه یه زائر دیگر رو هول بده پرد کنه یا یکی دیگر رو اذیت کنه یا با یکی دیگه تندید کنه یا احیانا برای به اینا نیاز به کار داره من به رفقا گفتم احساس وظیفه کردم برم خدمت برخی از مراجع بگم شما رو به خدا وادار کنید یه رو تو مجالس بیشتری حرفا رو بزنن بگیم بعضی‌ها رو کتاب در این زمینه بیشتر بنویسن به مسئولین سازمان زیارت بگیم از آقایون روحانیون کاروان‌ها بخوان این مسائل بیشتر برای مردم بگن آقا به دوستا عرض کردم هر کدومتون وقتی که دارید مشرف میشید این فکر رو بکنید با اینکه آرزو میکنیم هر ساله بیاید سالی چند بار بیاید مشرف بشید اما هر کدوم این فکر رو بکنید فکر کنید اولین بارتون مشرف شدید و دیگم تا آخر عمر توفیق پیدا نمی کنید چه حالی خواهید داشت محضر یک همچو بزرگوارانی که به یکی نظر مثل وجود رو کیمیا میکنند همه چیز آلم در ید قدرت اوناست وزیر و رو خواهند کرد شما میخوای خدمت اینا برسی قبل از هر چی, چی بخوای منو عوض کنید من آدم شم من بتونم تو راه شما باشم من بتونم شما رو بیشتر بفهمم من ب... از خودشون خودشونو رو طلبیم وقت این آدابی داره این حالاتی داره این شرائطی داره اینا نیاز به توجه خیلی بیشتر داره برخی بزرگان مقید بودند. که اگر زیارت میرند آیا مورد عنایت قرار گرفتن یا نه اینو جواب بگیرن برگردند آروم نمی شدن و می گرفتن هم جواب حالا به عناوین مختلف به صور مختلف به جواب می گرفتن که آیا ما را قبول کردید نواقص ما رو به ما میگید راه ما رو را تایید میکنید دست ما رو میگیرید که چیکار بکنیم چیکار نکنیم این بینش اگر ایجاد بشه شما ببینید الان توی وادی ارزشی مثل علم حالا علومم فرق داره به خصوص در وادی علم معنوی و تکامل اخلاقی و درجات عالیه غربه الالحق چقدر برای کسانی که یه مقدار این ارزش ها رو میفهمن چقدر اتش و وله این مسائل رو دارن حالا اگر عالمی که توان تربیت این مسائل رو داشته باشه شما چقدر قر این عالم رو میشناسید چجوری دست شو میبوسید و در محضرش زانو میزنید چجوری عز عالم میکنید التماس میکنید شما را به خدا منو از خودت نرون اگه جلسات خصوصی داری منو جز اون شاگردهای جلسات خصوصی هم جات بزن اگه میخوای یه چیزایی بگی منو جز اون عده قرار بده منم این حرفها رو بشنوم حالا امام است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 درکی قبل از اینکه بخوای چشمتو به هم بزنی برات حاضر می‌کنم اون وقت راجی به ائمه چی میگه قل کفا بالله بینی و بینکم و من اندهو علم کتاب امام صادق فرمود اگر این آیه را توجه کردید به این آیه توجهی فرموش امام صادق لارتبن و ولا یا بسن الا فی کتاب مبین علم کتاب پس رتب و یابسی نیست که علمش پیش اینا نباشه همه چیز عالم رو میدونن همه چیز هستی رو فقط خدا نیستن فقط خدا نیستن اون یه بحث دیگریه منهای خدا بودن هر چی بگید کم گفتید مردن یعنی چی مردن؟ آقا یک مؤمن، شما تو همین معراج سعاده آخر معراج سعاده آداب زیارته این کتابو بخونید از اول تا آخرش بخونید آخر معراج سعاده فکر کنم سه صفحه یا چهار صفحه راجع به آداب زیارت. مرحوم الله احمد نراقی روایت از پیغمبر نقل میکنه تو معراج سعاده که وقتی یک مؤمن دفن میشه به اندازه ای که روح اون مؤمن رشد داره احاطه بر زائرین قبرش داره. پدر شما از دنیا رفته، مؤمنی بوده. روحش چقدر آزاده. به اندازه ای که شما میری کنار قبرش فاتحه میخونی تلا برد میکنی از راه دور براش خیرات و مبرات میفرستی او حاطه داره حالا روح امام که علم کتاب پیششه لارتمن ولا یابس هم در کتاب از این گذشته حالا دومی شده قد کنی معلمین غیر از معصومین علیهم السلام و غیر از اونهایی که خودشون رو به اون دستگاه بستن که قدرت تحول در تکوین و اعمال ولایت تکوینی دارن، منهای اینا بقیه معلمین تمام توانشون اونچه چه به شما یاد بدن به اندازه استعدادی که شما دارید. بیشتر از این میتونم؟ یک شما استعداد نداشته باشید، او هر چه عالم باشه، میگه شما قابلیت ندارید استعداد ندارید من اونچه بلدم به شما نمیتونم بدم دو شما استعداد دارید توان او اون بیشتر از این من. امامان از این دو دید هر دو دید با بقیه فرق دارن یک قابلیت شما رو اگه بخواید بالا میبرن این مهمه قابلیت نداره میره میچسبه آقا میخوام منو عوض کنید شما فقط مثل مربیای معمولی نیستی؟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 بیه حد میتونید ظرفیت رو بالا ببرید بخوان در محضر این بزرگ با, با این امکانات تو مرحله اول خونم کوچیک خونه بزرگتر میخوام حیب نداره بخوان ولی اینا اول نمیشه بالتران رو خواست ما را آدم کنید ظرفیت بدید چشم برزخی ما رو باز کنید بعضیا ها میچسبیدن تو حرم تا به ما نشون ندید ما نمیریم. میخوایم یه چیزی به ما بفهمونید.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 این معرفت پیدا بشه که کجا میخوان برن وقتی معرفت پیدا شد به اقتضای اون معرفت چگونه رفتن مطرح میشه چگونه رفتن همینطوری که یه وقت هست ما دو تا دوستیم هم سن سال و هم‌سر دو تا دوست هم سن سال و هم‌سرمون هم از اون طرف دارن میان حالا داریم میبینیم از دور سلام علیکم چطوری حالتون خوبه بله بیا خیلی خودمونی این طبیعیه اما دو تا دوستیم هم‌سر مرجع تقلید ما داره روبروی ما میاد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 و روز نبود که چند نوبت روزه ابي عبدالله رو تو کربلا نخونه و اگر گاهی بزرگترها مشغول بودن بچه ها رو دور خودش جمع میکرد با اینا می گفت میخوام از کربلا بگم اینا حالا چه آدم بودن تو سطوحی که معلوم و همین مرحوم میگو من مرحوم حاج میذلی آقا رو دیدم به در حسینیه اصفهانی ها حاج آقا ساکن اصفهان بود چی بود ساکن اصفهان به حسینیه اسفحانیه های کربلا چسبیده بود حاجت میخواست تو کربلا این مرحوم گفت خودم بهش گفتم حاجه آقا به در حسینیه اسفحانیه ها چسبیده اونجا حرمه پرمود این حاجتی که من میخوام خیلی کچکتر از اینه که بخوام برم از امام حسین بخوام اینو در حسینیه میتونه بده از امام حسین بزرگترها رو میخوام چی اگر از نظر فقهی حساب کنیم مجتهد بود از نظر عقلی حساب کنید عالم به معقولات زمان خودش بود در سطح بالا از نظر توجه به حدیث و تفسیر حساب کنیم جزء کم نظیرهای اصر خودش بود از نظر ادبیات حساب کنیم از ادیوای معروف اصر خودش بود یه آدم بی سواد نبود شاگردایی کو تربیت کرد الان چهره های علمی سطح بالای این مملکت بعضی ها رفتن بعضی میگه من از یه اسفحانی هایی که حالا نه منظورم دورم اسفحانیت موضوع داره حسینیهی که مثلا به نام امام حسین دو کربلا هست از اون در آقا این حریم حریم افاظه انایت پروردگار بر عالم وجود است گر گدا کاهل و تقصیر تخصیر صاحب خانه چیز ما رو از این دور داشتن ما را از این ارزش ها جدا کردند ما را از توجه این و ما را در این حدی در طول تاریخ بر مبنای عوامل مختلف نگه داشتن. حالا رفتیم بله دستمون ذری رسه زریرم بوسیدیم توافم کردیم بعضی چیزام خواستیم اومدیم. من جسارت به هیچ ظاهر ما مس نمیکنم گرچه کف پایه همه اینها رو توطیایی می کنم ولی به نظر می رسه بهتر از این میشه شد.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 کازمین همه درست اما گاهی دیده شده احساسات و عواطف بر معرفت و ادراک غلبه میکنه اینم بده مثلا طرف رسیده تو حرم امام حسین علیه السلام الان چنان هیجان احساسات و اون بغض گلوش گرفته شیون میزنه گریه میکنه بسیار خوب ولی آیا به اندازه که یه مقدار تخلیه شد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 بچسبی یا عبد عبدالله تو سرم میزنم خودم هم دارم منفجر میشم جیغ میکشم اگه نمیزارم بغز گلو میگیر خودم رو کنترل میکنم اما در کنارش میگم آقا آدم هم کنی چجوری بشم شما دوست این سلیقه شخصی منه؟ اینجوری باشم حالا از کجا معلوم این سلیقه شخصی من ایدعال باشه شما چجوری دوست دارید من قرار بدید اونجوری بشم رفقه یکی کهی اونجا توجه پیدا کردیم اونایی که مشرف شدن تو ذهن بیارم اونایی هم که مشرف نشدن انشاءالله به زودی برم خیمگاه بلنده تل زینبیه تو رسمتهای بلندیه گودال قتلگاه پایینه که معرکی جنگ این فضای صحنوی عبدالله کمی بیشتر حرم اول فضل عباس نزدیکی الغمه دشمن اون بر بوده، اینا این قسمت رو گرفته بودن که تو قسمت مرتفع باشن، دسترسی با آب راحتی نداشته باشن، آبم این بره، این نیم دایرهی، این فضا رو در نظر بگیرید محاصر است، دست راست اول پس که اول جدا شده نزدیکتر تر است. اونایی که مشارب شدن تو زهنشون بیارم، میاد این طرف شاید صد متری هست، به طرف حرم نزدیک میشه، دست چپ افتاده، اونجایی که مشک روبروی در ورودی باب قبله ی حرم از قبل الان ساختن جایی که مشک افتاده از طرف القمه به طرف خیام عبی عبدالله تقریبا از دست تا دست اول از دست اول جدا شده تا دست دوم از دست دوم جدا شده تا جایی که مشک افتاده این مسیر خطی است به سمت خیام عبی عبدالله. چند صد متر راهه. بعضیشو باید است بعضیشو با بیت دو تا دست چرا امر امامش را اجرا کند که فرمود اگه میتونی آب بیار به خیام برسون ولی اونجایی که مشک افتاده بدن فاینجا القمس مشک اینجاست اینجوری اومده دستا افتاده رسید اینجا اما وقتی که بدن اینجا دفن شده دیگه به سمت خیام نیست این اینوریه حالت دو دلیل شاید یه دلیلی اینه که وقتی مشک تیر به چشم خورد اون موقع دیگه ولی یه دلیل دیگر اون قدرت ادب اول من نمیتونم وزیف همون نسبت به امامم انجام بدم عقب گرد میکنم لذا وقتی امام حسینم میاد بالا سرش میگه آقا من همینجا نه من نبر جلو مقام اول علیه السلام مطیع امر امام احساسات نیست معرفت السلام و علیکم ایوب عبد المتی علی الله ولی رسولی ولی امیر ولی الحسن ولی حسن متی عمر امامش امام گفته آبیو چشم امام گفته به جنگ چشم. امام گفته نه جنگ چشم امام همه جا ولی یه جا به امام میگه آقا اینجا من یه خواهشی دارم منو نبر خیمگاه منو همینجا بزار بذار در طول تاریخ بمونه دیدید دوتا مناره های امام حسین تلاس گنبد امام حسینم هم, هم تلاس گنبد اولفز هم تلاس دوتا مناره های از اولفز تا اون پایینش کاشی بالاش تلاس دو اتوبوس رو خواه گفتن خوندم حالا گفتن اون معمارانی که مشغول تلاکاری بودن مناره از تولفز داشتن تلا می کردن هرچی تلا می کردن بند نمیشد. تعجب کردن چیه شبیه اون مسئول خواب دید از تولفز رو گفت دست بردار فرق من و حسین بذارید معلوم باشه بین ما دوتا باید تفاوتی باقی باشه همه ببینید معرفت تولفز سلام چه میکنه نسبت به حریم امام و مقام امامت و مطیع بودن در مقابلش باز در حالات یکی از بزرگان از اولیاء دین نوشتن از اوتاد روزگار پیاده میرفتم رفتم کربلا نرسیده به کربلا تو بیابونها حالم بد شد گم شدم آتش بر من غلبه کرد به حالت غشق دادم یه وقتی دیدم که تو سحن عبی عبدالله مثل که منو آوردن اما این ساعت که همی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 اگر خدا کنه گوش دل ما رو وا کنه بین الحرمین واسی یه نگاه به این ور کنید کنی. هنوز ما موسی میگه هلو الناصرنی سرونی بعد یه نگاه به این ور کنید گوشتون میشنوه میگه لبه یا سیدی و یا مولای چشمتون اگر بخواد نظاره کنیم، حرم حرم قرب الهی برای حرکت انسان ها به سوی ارزش های بالاست لذا بخوایم در این زیارتها اونایی که نرفتن ارز کردم کلاس ببینید برید برید با دیگران اونایی که رفتن بگن به دیگران و از دیگران بخوایم در این زمینه کتاب بنویسن توضیح بدن بحث کنن روشن کنن این فرصت عظیم کسب معرفت از چنین معلمان عالم بشریت برای تحول معلوم بشه اما یه بحث دیگه دارم با اونایی که برگشتن چه دوستانی که الان در خدمت شنیم چه هر کسی که حالا کربلا میره میاد ممکنی نوارو هم و بشنون یا بشتبه کنم کسی که رفته کربلا برگشته وظیفهش سنگین ترا. کربلا از حج کمتر نیست چی بالاتره مگر پیغمبر نفر بود ثواب نود حج و عمره مقبوله داره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 نکنه دوباره دل زینب کبرا رو به درد بیاریم خواهر اول از شما شروع میکنم شب یازدهم اینجا من گفتم به زحمتم گفتم از روی کتاب خوندم وقتی زینب کبرا خیمه ها آتش گرفته بود سر صدا گشت که بچه ها رو پیدا کنه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 ایناب به غیبت ایناب به دروغ اینا به مال مردم خوردن اینا به انجام وظیفه نکردن اینا رسالت خود رو نشناختن و چکار کردن اینا خود رو فدای حق کردن من چقدر خود فدای حق هم حق فدا بشه من جلبه پیدا کنم حق فدا بشه دار و دسته من اسم رو از پیدا کنم حق و یدک بکشم خودم و به رخ مردم بکشم من ظاهر امام حسینم صد بار برم کربلا و بیام اونی که امام حسین از ما میخواد اگه ظاهر کربلایی شما رو به جان زینب کبرا سلام الله علیه ها شما رو به مقام اول فضل لباس اینایی که مشرف شدن تصمیم بگیری یک حرکت دینی بهتر حرکت معرفتی قویتر وقتتون یه مقدار اختصاص بدید برای خدا و دین و مذهب و راه اونا همه چیزشون رو دادن برای دین ما یه مقدار از آسایش و زندگی و وقت رو اینامونه بدیم برای دینمون بدیم نه برای خودمون نه اینکه دینو دین و قرار بدیم همون درده در بی عبدالله یحوتونه ما در رد هم و ازامو حسوب البلا قلت دیانون من به او بدبین او به من بد بین، من به این بد بگم، اون به من بد بگه این فکر کنه که با او رقیبه، او فکر کنه با این رقیبه این میگه اونو از سحنه بدر کنم، این یکی میگه چه خبره، تو مذهبی ها، تو متدینین، تو همین که دم کمایی این که مثلا فرض کنید این خودش یه نمونه آقا روز سنگ، قرمز، بالا سر، زریح، عبی عبدالله نماز خونده چقدر ارزش داره، خیلی خوب آقا بقیام که تو نوبت در نماز بخونن شیعه یا نه شما نخون به خاطر شیعه ی ابی عبدالله بگو یه شیعه دیگه جلو بیفته امام حسین نمیده به هول میده پرچ میکنه طرف رو خودش بخونه بنده این سفر رو اون سنگ نماز نخوندم قاطع میگم دیدم داره مردم عذیت میشن گفتم حسین جان تو میدونی من عاشقم رو این سنگ واستم ولی نمیشه چاره میرم تا هر دورتر امکان داره وای میسم تو میتونی عنایت کنی خدای تو هم میتونه عنایت کنه نه فقط اونجا عنایت میکنه من به خاطر شیای تو میام کنار بذاری شیای تو بدن اونم شیای تو و یهودی نیست که اونجا دم نوبت میگیرین نماز بخونه به گوشم وای فحش شنیدم برای که رون سنگ نماز بخونن به گوشم فحش شنیدم مثلا معذرت میخوام مذار... برو گم من میخوام اینجا نماز بخونم وای چی میگیم ما به هیچکس هم نگفتم الان میگم بابا یک مقدار شما را به خدا که از کربلا برگشتید توجه پیدا کنید شما رفتید جایگاه درخشش عالیترین عیسار عالم وجود شما نجف رفتید نمیتونم فاه جلوگریه بزرگترین عبد الهی بعد از پیغمبر در عالم وجود مظهر نمایش و جلوه عبد خدا شدن یعنی چی اگر روبروی زریع ازت تو ایون واسی تو ذهنتم بیاری ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر وقتی میتونی رو پادواسی اونجا ربهو فیه تجلا و زهر او هم که حیات و ممات نداره زنده است الان اگر دقت کنید او داره مگر جناب شیخ مفید با سید رزی سید مرتزا نیومدن کنار ذریح امیر المؤمنین آقا جواب میخوایم، جواب داد بهشون کاغذ رو نوشتن گذاشتن تو زریع جواب میخواییم کاغذ در آوردن دیدن روش نوشته شد الحق ولدی و شیخ ما جواب میگیره مگر مقدس مگر سید بحر العلوم نمیگه یکی از دوستان اینجا نشستن پرسید این محراب بود تو مسجد سهله از کردم ولی اینجا بوده که نقل شده مگه سید بحر نمیگه مشکلی برام پیش اومد علمی سید بحر العلوم اون نظمت مشکل علمی برام پیش اومد صبر کردم شب که حرم امیرالمومنین کسی نیست میخوان درو ببندن یوا شکی پاورچین پاورچین اومدم در وا کردم منتهی یکی تعقیبش می‌کرده اون عقل کرده الان شاگرد میگه شاگردم میگه دیدم سید داره به طرف حرم میره تعقیبش کردم گفتم این خبراییه میدونستم که این چجوریه سید متوجه نشد گفت دیدم وارد حرم شد در بسته شد من امکان ورود پیدا نکردم سید وارد شد بعد از لحظاتی سید از در حرم اومد بیرون من تعقیبش کردم دیدم رفت به طرف مسجد سحنه دیدی چقدر راه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 آقا از حرم دنبالتونم. بگید چی بود؟ قاججون برود. سید روم حساسیت داشت. سر سفره قضا مهمون بیاد خوشحال می‌شد و اگر مهمون بیاد قضا نخوره سید متأثر بود. گاهی هم میگن میومد بیرون، کسی رو پیدا کنه بیا بشین با هم قضا بخوریم. مستحب که مثلا افراد رو سر سفره قذاتون شریک بکنید. مثلش از شما به دیگران آثاری برسید گفت روز سر نهار رفتم خونه ایش. استاد سید سید خوشحال شد مهمون اومده سر سفره نشستم گفتم غذا نمیخورم گفت چرا گفتم تا نگی اون شب چه خبر بود نمیگم گفت من اذیت نکنید گریه کردم دست استاد بوسیدم دامنشو گرفتم گفت حالا میگم گفت مشکل علمی داشتم حل نشد شب مشغول مطالعه بودم گفتم ما آقا داریم معرفت رو ببینید نجفه ما مولا داریم میرم از آقا سوال میکنم اومدم در دیدی برام باز شد رفتم تو عرض کردم آقا فرمودن که سید امام تو مسجد سهل مشغول نمازه چون امام اصرتو برو پیش او از او سوال کن گفتم چاش، اومدم در مسجد که رسیدم عظمت امام تو محراب به گونه ای منه گرفت دیدم پام میخقوب شد این که تو دیدی هر لحظه یک قدم بر می هر امر امام که میشد پام یا راید یارا یه قدم برداشتن امام میفرمود بیا من یه گام برمیداشتم دیگه نمیتونستم بعد میفرمودند تا این که به محراب رسیدم دو تا زانوان به زانوی آقا چسبید لب مبارکش در گوشم آمد و فرمود گفتن چی گفت اون دیگه نمیگه به هیچ تا حالا نگفته چی بوده انایتشون بزرگواریشون مرحمتشون دستگیریشون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 شما یک معلم برجسته پیدا کنید تو زمینه گوناگون بسیار عالی یه وقت هست میگید آقا جون من این معلم و قبول ندارم این کلاس قبول ندارم تو این کلاس هم نمیام خب یه وقت میرید تو کلاس میاد بیرون هیچ تأثیری نپذیرفتید شما وقتی رفتید تو کلاس با معلم بودید اومدید بقیه نمیگن آقا ای به من جواب بدید میگه بلد نیستم میگه خب شما که با فلانی کلاس دارید و چی شد مایی که دم از علی میزنیم تو عیبون امیر تو ذهن خودم به ازت از آقا یه عمریس داریم میبالیم تو جلسات، تو محافل تو کلاس ها، تو جمعیت ها میگیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما به شما می نازیم حالا که به شما می نازیم. گرچه شاگرد لایقی نیستم. ولی به شما نازیدم. حالا اومدم خدمت شما. یک کاری نمی کنی که شاگرد از محضر استاد برگرده. ای همه میگه به تو مینازم. اگر کسی با مکتب ما نباشه معلوم بشه که نازیدن ما بیخود خود نبود. اگه ما مینازیدیم، حساب داشت که می نازیدیم. اینا همه کاره ی عالم وجودن میخوان انایت بکنن خب حالا ما رفتیم خدمت ای استادا برگشتیم خدمت ای معلم برگشتیم بعدش اولین چیزی که برای بقیه محسوسه چیه؟ عمل ما اول عمل ماست دیگه یعنی ممکنه کسی با شما که حرف نزنه سوال و جواب نکنه روحیه شما را از طریق گفتار شما نفهمه ولی از شکل اعمال شما میفهمه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 تا داغه تصمیم بگیرید تا سرد نشده تصمیم بگیرید من وظیفه شرعی میعرفا وگرنه من بچه ترم باید یکی به من بگه حالا که میگم بلندتر میگم خودم بشنوم تا داغه برید یه گوشه بشینید یکی از دوستان جوونترم از دبلپس دیدم حالش منقلب اشک میریزه سوزی داره رفتم کنارش به عنوان وظیفه گفتم اجل من نمیخوام حال تو رو قطع کنم نه خودم الان انقدر وقت داریم با این وقتهای زیغ که بیام با تو حرف بزنم منم میخوام تو حال خودم باشم ولی احساس وظیفه کردم ببین الان چه حالی داری در مقابل حرم از فز هفتاد سالگی خود تو در نظر بیار این سفر امشب یادت بیاد حالا من زندهام یا مرده تو پیش خودت یادت بیاد بگو پنجاه سال قبل چل سال قبل کمتر بیشتر تو حرم از فز بودم اینو فهمیدم که اگه اون راهی که شما میخواید ما باشیم بحچه ارزشیه. این 50 سال از 20 سالگی تا افتاد سالگی تو چل سال سی سالگی تا افتاد سال سالگی تو جوری زندگی کن تو افتاد سالگی که رفتی قرم از طبل بگی آقا ممنونم یه جوری عمل کردم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 و مصر باشیم من اجازه بدید رفت بدم به این آیه‌ای که مورد نظرمونه یکی دو تا روایت یک چکی از نهدو الولاغه بخونم بیحساب نیست ببینید گفتیم قرآن شریف می و ازا سعلا که عبادی انی اگر بندگان من از تو در مورد من سوال کنم فا اینی قریبون اجیب و دعوتا داع دعان وقتی که منو میخونن من نزدیکم من جواب میدم من اجابت میکنم فقط میخوام یکی دو نکته این حالا بحث دارا این بحث ها بحث داره ما بحث ما نمیشه به اینجای کشید میخوام در این رابطه اشاره کنم چرا به ما فرمودن تو دعا اصرار کنید چرا ببینید من اول حدیث شو بخونم بعد ارتباط بدم به این بحث زیارت بچسویدا از امشب تصمیم بگیرید شما همه بهتر عمل میکنید من وزیفم دارم انجام میدم صبح ده دقیقه یا شبه ده دقیقه وقتی بعد نمازا میگید سلام علیکم یا عبا حالا یه جور دیگه بگید حسین جان من اومدم کلاس شما برگشتم هر روز بگید حالا من روایت می در رابطه با دعای خدا بعد خواست از ائمه ببینید ارتباط شوری میشه با این بحث میشتم ما حسین جان رهات نمیکنم میخوام با تو باشم من دانه نمیکنم میتونم شیطان نمیذاره هوای نفس نمیذاره دوستان نواب نمیذارن خود ها هوا پرستی ها نمیذاره هواپرستی ها نمیذاره مقام پرستی ها نمیذاره خیلی چیزای دیگه نمیذاره ولی اینو فهمیدم اگه با شما نباشم بیچاره‌ام حالا همون سلامی که میدی از سلام که یا عبا عبدالله گفتی بعدش چیکار کنید بعدش واسفید همون تو سلامتون از سلام علیکه عبدالله حسین جان بلم نکنی حسین جان میخوام با تو باشم حسین جان میخوام تو راه شما باشم حسین جان میخوام دستم رو بگیری چرا؟ حالا اجازه میدید من روایت بخونم کتاب دعای کافی جلد دو صفحه 471 <تصفيق> حدیث شماره یک من ابي عبد السلام قال امام صادق فرمودند دعاء كهف الاجابه کما ان الصحاب كهف المطر دعا پایگاه و منبع اجابت است همونطوری طوری که ابر پایگاه و مخزن باران است عبر باید بباره پس دعا با باید به با اجابت برس و چرا بعضی دعا به اجابت نمیرس علی زاهر یا حدیث شماره دو انعبی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام ما عبرز عبد و نیدحو الله العزیز الجبار عبدی دستشو به سوی خدا بلند نمیکنه الا الاستحیا الله عزبجل مگر اینکه خدا حیامی کنه امام فرموده من میگم حدیثه خدا حیامی کنه اما یرب دهها این دست رو به هیچ خالی برگردونه دقت کنید بعدی. حتی یه فیها من فضل رحمت هما شما. خدا حیام میکن دستی که اینجوری به فروش بردن خالی برگردونه. از فضل خودش رحمت خودش کنچه میخواد توش قرار میده و ه وکم وقتی یکی از شما دعا کرد. فلا يَرَدَّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وقتی دست رو به دا بلند کردید بعدش نکنه میتونی بیل کنید این دست رو به سر صورتتون بکشید و به سرتون چرا بزرگان تفسیر کردند دیدید شما مثلا بعضی وقتا دست میدید با یه بزرگ دست خودتون رو میبوسید دست میکشید به زرید رو میبوسید دست کشیدید به ذریع میمالید به سر صورتتون چرا؟ به خاطر دستتون یا به خاطر تماس با اون چی ارزنده؟ با اون فرد ارزنده؟ دستی که به طرف خدا گرفتی جای لطف خدا شده جای لطف خدا رو مست کن توجه داشته باش امام حالا دقت کنید چرا پس اگر این حدیثه خب بعضی وقتا ما میبینیم که به اجابت نمیرسه یکیش اینی که الان میخوام بگم ارتباط به این بحث مام داره یکی دو داره باعثش صریح میخونم صریح س... صفحه 475 حدیث شماره 4 ان ابي عبد الله عليه السلام امام صادق فرمودند ان الله عزوجل کرها الها الناس بعضهم على بعض فی المساله خدا اکراه داره خوش نمیاد شما یه چیزی که از یکی از بندگان خدا میخوای هی اصرار کنی حالا یه چیزی هم میخوای به یکی بار گفتی بلکن. خود پیش مردم زلیل نکن. هی مسر باشه. هی به با افراد. کره الها. پافشاری الها کردن. هی از دیگران خواستن. اینو خدا اکراه داره. و احب و زالکل نفسه دوست میدارد. با خودش این کار بکنید. با خود خدا. یعنی در پیشگاه خدا. هی الها بکنید. هی اصرار بکنید. ان الله عز وجل یحب ان يسال و یطلب ما عنده خدا دوست داره که از او بخوای سوال کنی بخوای الها ببرزی اینو ان شاء توضیح بدم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله خدا عقدئیه می که تو درگاه خونه من هی بگو هی بگو اشاره قبلا کردم بعد استدلال مفصلتری خواهم کرد با این اصرار ورزیدن در در خانه خدا ارتباطت با خدا بیشتر میشه هر چه ارتباطت با خدا بیشتر شد قربت بیشتر میشه هر چه قرب بیشتر شد معنویتت بیشتر میشه هر چه معنویت بیشتر شد کمالت عالیتره هر چه کمالت عالیتر بود آثار کمال از شما بیشتر تراوش میکنه لذاب میگه بیا اینجا سر به سا ای بگو ای بخو. خب زیارت نسبت به امام پافشاری در حریم امام التماس در پیشگاه امام مگه مظهر خدا نیستن همون میشه لزاز صبح سلام میدی بگو زور سلام میدی بگو شب سلام میدی بگو نام علی میبری بگو نام ائمه دیگر رو میبری بگو این الها را حالا دقت کنید حدیث 5ش انا ابی جعفر علیه السلام آقا امام باقر فرمودند لا والله لا یلحو عبدن علی الله عزوجل الا تجاب الله له بنده ای الها نمیکنه، اصرار نمیکنه، هی پافشاری نمیکنه تا نگریت تفلک حلوه فروش هی باید این پافشاری این استار رو مثال زده میگه بنده خدایی بده کار بود به ادهی قضیه حلوه فروش قضیهش اینه بده کار بود به ادهی طلبکارا همه جمع شدن در خونش وقتی من هیچی ندارم به شما بدم من هرچی داشتم از دستم رفته در این بین حالا هیچی هم تو خونه نداشت از اینا پذیرایی کنه دید یه حلوا فروشی طبق قرمای شیرینی حلوایی چیزی داره تو کوچه داد میزنه گفت خب پس حالا آره این صدا بزنیم این طلبکارا که تو خونه نشستن یه چیزی اینا بخورن اینم جز یکی از طلبکارا بعد یه فکری برای این بکنیم این بنده خدا اومد تپلکی بود حلوا فروش بود گفت که اینو خریدن هم خوردن گفت پول منو بده با من ندارم چیزی بدم با آقا من گفتم این همه طلبکارم هم تو هم یکی از اینا خب اون بچه بود فلکی تحملش هم نداشت زد زیر گریه اونقدر گریه کرد که بقیه کارا گفتن بابا ما که از این طلب داریم طلب این یکی هم ما جمع کنیم بدیم این گریه زاری نکنه بره تابت به بقیه اون وقت میگیم البته این در رابطه با این موضع در پیشگاه خدا اصرار برزیدن حالا طرف مثلا با یه دهندری با یک همیازه ای با یک مثلا جستی که خوابم قشنگ برم و موهام قشنگ شونه کرده و اتو کرده و حال و چنین و بعدم کنار زیاب و عبدالله به حالا نداد خدا حافظ ما که رفتیم به ما ندادید واسید در این خونه چرا تو کربلا میگن حتی میتونید سر صورتتون تون اصلاح نکنید با گرت و قبار برید همه گفتم به رفقا همه اماکن زیارتی داره اول برید قسخ زیارت کنید. لباس و مرتب بپوشید، خودتون رو معطر کنید به کربلا داره با اگر را برید. چون اولین زائر ابی عبدالله زینب کبرا بود. چجوری زیارتش کرد؟ اجازه بدید بحث ما دیگه بمونه. من همین جایی یه ارزه ادبی بکنم ببرای بحثا رو بذاریم برای بعد ان اولین زائر ابی عبدالله علیه السلام خود زینب کبراست.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 آیا دست دراز کرده دامن شمرم بگیره بکشه یا نه اینو نمیدونم ولی اینو گفتن شما حرم تا قتل گه رو در نظر بگیرید کجا تا کجاست از حرم تا قتل گه زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین ولی زینب یه رسالتی داره رسالتش یادش نمیره بچه ها تو خیام بی, بی دشمنا دارن به طرف خیام میرن زینب یه دلش تو گودال قتلگاه پیش و حسینه اما رسالتش براش به عنوان انجام وظیفه بر دلش غلبه داره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 اومده کنار گودال قتلگاه اما اونی اینا رو که گفتم من گمان میکنم اما اونی که مسلمه چیه اصقه یازده همه حالا این زیارت رو ببینیم عنی اومدن زن و بچه رو به سمت کوف حرکت بدهند. زینب سلام علیه ها به کنار قتلگاه که رسید این از کنار قتلگاه <تصفح> عبور دادن که اینا بیشتر رنج ببرند. داره که همه خودشون از مرکبه ه هر کسی بدنی رو در آغوش گرفته و داره اونجا نوه سرایی میکنه راوی میگه یادم نمیره زینب رو دیدم که همینجور داره این ورانور بر نگاه میکنه گلی گم کردم میجویم او را و هر گل میرسم میبویم او را میگند که از زیر شمشیر شکسته ها، و خنجر ها، و ها، صدای ابی عبدالله به گوش زینب اومد گل گم گشته اد خواهر منم من اگر نمیدونم میگن اگر امام حسین صدا نمیزد شاید زینب پیدا نمیکرد. کرد یه وقت زینب صدای آشنا به گوشش آمد یا نه بهتر بگم اون عشق زینب بوی حسین رو به مشامش رسوند یه وقت دیدن کنار قتلگاه داره شمشیر شکسته رو کنار میزنه. اونجا به زیارت امام حسین آمده اول کاری که کرد دست زیر بدن عبی عبدالله این بدن بی سر رو به سوی آسمان حرکت داد و دستاران به طرف آسمان خدایا این قربانی رو از ما قبول کن دختر خرسال ابی عبدالله ظاهرا سکینه باشه میگه دیدم امه تو گودال قتلگاه داره زمزمه میکنه اومد امه جان این نعشه کیه که داری با ورف میزنی؟ گفت حق داری نشناسی بدن و یا سر میشناسن که سر نداره یا لباس به لباس میشناسن که لباس تو تنش نذاشتن گفت دخترم این سره تن باباد حسینه میگه به خدا من لبامو گذشتم جای بریده گلوی بریده پدرم دیدم از گلوی بریده پدرم این صدا خارج شد شیعتی مهماو و از و ما انفذ او سمعتم به غریبه او شهیدن فندبونی اما این ظاهره حالا اومدن کمکشون کردن تسلی دادن زیرا بغلشونو گرفتن اشکشونو پاک کردن با تازیانه به زینب کبران صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و على الأرواح التي حلت بفناءك، انشاء خوش، انشاء خوش. عليك مني سلام الله، أبدا ما وغي. وبغي الليل والنار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على هم وعلى أولاد المسلمين. سنجام تو ایوانش میاد همه شما تنهایی زمزمه کردم و آرام گفتم من از کودکی آشقه بودم قبولم نبا گرچه آلودم مبادا برانی مرا از دره به پهلوی بشگزده مادره به هنگام پیری مرانم زبین که سرف تو کرده جوان یقید اللهم بسم کلم عظیم العظم العظم عجل العکرم بمولانا صاحب الزمان یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغل سبب قلبي على ديننا وكفنا يا غازي يا و یا کافی المهمات اینکه مجیبون دعوان اینکه كل شيء شیم غبیر یا الراحمين يا ستار العيوب یا غفار الذنوب یا مالك یوم الدين یا من یحول بین المرع و غلبه. یا من علی اغرب و من حبل لوتین یا مدبر دبر یا مکمل و کمل یا مسبب و سبب یا مفرج و فرج یا مفت و فتح. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمی. یا رحمن رحیمین یا ذل جلال و الکرام یازل ذل جلال و الکرام یا ذل جلال و الکرام نجاتا منك یا رحمن رحیمین نجاتا منك یا ذل جلال و الکرام به حق بسم الله الرحمن الرحیم نجنی و خلصنی یا رحم الراحمین الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعه المعصومین من ذریت الحسین خدا خدا امر فرج امام الزمان امضا بفرما با فرج حضرت همه انسوها و مسلمین و شیعان بل شیعان دردمند عراق رو از مشکلات و ها نجات مرحمت رحمت بفرما خدایا عوامل تضعیف مکتب تشیع و عوامل تضعیف مبدات شیعیان برطرف بفرما خدایا معرفت به خودت و دین خودت و کتاب خودت و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 به سرعت و هرچه زودتر توفیق زیارت با معرفت شامل حالشون بفرما. خدایا یا جوونهای ما رو در پناه امام زمان موفق و معید و منصور و عالم و متدین و پاک قرار بده خدایا اونهایی که میخوان ما را از مسیر علی و آل علی دور کنن اگر قابل هدایت نیستن ریشکنشون بفرمان